رب اَدخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لی من لدنك سلطانا نصيرا خوشحال هستم از اینکه در جمع برادران عزیز سربران مکرم فضلای دانشور حوزوی درباره روش شناسی اجتهاد اخلاقی با هم گفتگو میکنیم کمن میکنم از بعضی از مقدمات با توجه به جلسات پیشینی که فهرستشو من شنیدم و اساتیدی که تشریف آورده بودند باید خیلی سریع عبور بکنیم و یه معرفی از اجتهاد اخلاقی داشته باشیم خب توجه دارید که وظیفه عالمان دین فهم درست و روشمند معارف اسلامی از منابعه این روشمندی و درستی، فهم درست و روشمند، این روشمندی و درستی در علم اصول فقه ارزه میشه. یعنی علم اصول فقه روش عالمانه فهم معارف اسلامی از منابع رو به ما ارزه میکنه که ما برداشتمون از منابع دینی برداشت عالمانه و صحیحی باشه. علم اصول فقه موجود علم اصول فقهی که ما در اصول مزفر و رسائل و کفایه و درس خارج موجود و حلقات و امثال اینها میخونیم ناظر به کشف احکام فقهی شرعی یعنی احکام تکلیفیه خمسه است و اگر بخوایم یک کمی دقیق تر صحبت بکنیم ناظر به کشف احکام خمسه هم نیست الال و حر... چیز واجب و حرام است ناظر به الزامات یعنی واجب و حرام است واقعش اینه گرچه ادعاش اهمه و احکام خمسه رو در بر میگیره اما اونی که در واقع اتفاق میافته واجب و حرام است جهتش هم اینه که یکی از مهمترین مباحث علم اصول مبحث حجیت حجیت رو هم تعریف کنند به معذریت و منجزیت معذریت و منجزیت که معنای حجیت میشه در واقع فقط دائر مدار واجب و حرام است اونجاست که ما می میخواهیم و منجز میخواهیم به همین جهت هم شما ملازم میکنید در فرق به مسائل استهبابی خیلی کم پرداخته میشه بیشتر دقدقه فوقه های ما با این مبنای جیت که معذریت و منجزیت باشه حول واجب و حرام میگرده یعنی خطوط قرمز رو مشخص میکنه خب ما معارف اسلامی رو اعم از فقه به معنای احکام تکلیفیه می دانیم. یعنی همونطور که احکام رو باید از, معارف، از منابع دینی استنباط کرد و به صورت عالمانه و روشمند دریافت همونطور اخلاق اسلامی رو هم باید از منابع دین عالمانه و روشمند استنباط کرد همونطور معارف رو هم باید از منابع دین عالمانه و روشمند استنباط کرد مثلا احوالات قبر و قیامت یا مثلا توصیفات عصر رجعت یا مباحث مربوط به بعد از ظهور امام زمان علیه السلام یا علائم ظهور اینا در روایات ما اومده بعضا در آیات شریفه ما مباحث مربوط به معاد اومده اگر قرار باشه ما یک فهم درست آلمانهی از اینها داشته باشیم این احتیاج به یک روش شناسی داره علم اصول فقه موجود ما خیلی نظارت بر این مقوله مباحث نداره بیشتر در دایره تنگ احکام تکلیفی قاعده به ما بیان میکنن همچنین در علم اخلاق خب کما بیش میدونید حوزه علمیه اعتناع ویجهی به علم اخلاق نداشتند البته درس اخلاق همیشه در حوزه های علمیه رونقی داشته و به پا بوده اما درس اخلاقی که در حوزه های علمیه به پا بوده بیشتر درس به اسطلاح موعزه و اندرز بوده و به هدف بعث و تحریک مخاطبان برای اخلاقی زیستن و برای توجه به خدای متعال و حفظ تقوا و امثال اینها درس اخلاق برگزار می شده ببینید ما دو جور کلاس اخلاق میتونیم فرض بکنیم. یک کلاس اخلاقی که هدفش هدف عملی است، هدفش هدف بحث و انگیزش مخاطب است برای اخلاقی زیستن. یک کلاس اخلاق یه جور کلاس اخلاق دیگه داریم که هدفش بررسی آلمانه گزاره های اخلاقی باشد بررسی مجتهدانه و فقیهانه اخلاق اسلامی باشد مثل اون سختگیری که در کشف احکام فقهی در کلاس های درس خارج فقه میشود ما سختگیری بکنیم در کشف گزاره‌های های اخلاقی از منابع دینیم اینا میتونه یه جور کلاس اخلاق باشه این مقوله از کلاس اخلاق تو حوضه علمیه چندان رواج رونق نداشته و علم اخلاق ما از این جهت کم پیشرفت کرده به تحبیری ما اخلاق فقاهتی و اجتهادی اخلاق سنباتی، اخلاقی که در واقع آلمانه و متقن از منابع دین استخراج شده باشد خیلی کم داریم یا کمی تا قسمتی ندارید. این چون در صدد همچین چیزی هم نبودند بیشتر اخلاقیات رو از فا تسامح در عدل در مستحب طلب نمی و مثلا به عنوان توصیه ها و اندرس ها و می گفتند فایده علم اخلاق باید بهرهای عملیش باشه. ما خیلی دنبال دانش اخلاق نیستیم. از این جهت علم اخلاق خیلی رونق پیدا نکرده و بیشتر اون کلاس های اخلاق عملی مد نظر بوده به همین جهت اصول فقه موجود ما در مقام استنبات گذاره اخلاقی از آیات روایات و در مقام بهرهبرداری برداری در علم اخلاق اسلامی نارسایی دارد یعنی اصلا ادعایی نداره اصلا ورودی نکرده. به یه تحبیر دیگه یه میتونیم بگیم علم اصول موجود ما این کتاب های اصولی موجود ما مشتمل بر دو دست مسائله یه دست مسائل عام که در همه حوضه های معرفتی کاربرد داره و یه دست مسائل خاص که فقط در خصوص کشف احکام فقهی کاربرد داره اون دسته اول رو بعضی ازش تبیر کردن به اصول تفقه نه اصول فقه اصول تفقه چون تفقه یک معنای عام میداره که شامل دینشناسی به معنی گسترده خودش میشود. فقه یه معنای خاصی پیدا کرده در استلاح موجود که شامل حکم شناسی میشود. و بس، نه دینشناسی. عرصه کامل دینشناسی رو در برنه. اصول فقه موجود ما یه سری مباحث داره که این مباحث مباحث من و در تمام عرصه های دینشناسی میشه از اینها استفاده کرد مباحث الفاظ. مباحث الفاظ رو نوعا در تمام مباحث دین شناسی میشه ازشون استفاده کرد. یه دسته مسائل خاص داره که فقط در کشف احکام فقهی اینا مصرف داره اون اولی رو میتونیم اسم شد بذاریم اصول تفقه این دومی مسائل خاصی که فقط در کشف احکام فقهی کار داره، اینا رو بذاریم اسمشون اصول فقه الاحکام خب این اصول فقه الاحکام فقط تو فقه مصرف داره و الزامن ممکنه در سایر حوزه‌های های معرفتی قابل اجرا نباشه برای همین ما اصول فقه موجودمون نیازه به ترمیم داره اگر این علم, علم روش شناسی اجتهاد باشد روش شناسی اجتهاد خیلی گسترده است باید شامل اجتهادات فقهی بشود یعنی احکامی شامل احشاءادات اخلاقی بشود شامل احشاءادات معارفی هم بشود شامل احشاءاد نظامات اجتماعی هم بشود ما یه اصول فقه اینجوریم. اصول فقه موجود ما از این جهت ناقصا و ناتمام حلقه مفقوده چیه حلقه مفقوده ای که ما داریم مسائل خاصی است که در کشف معارف اخلاقی دین کاربورد داره و مسائل خاصی که در کشف معارف اعتقادی دین کاربورد داره و مسائل خاصی که در کشف معارف اجتماعی و مثلا نظامات اجتماعی دینی کار بود داره. میتونیم به اون اولی بگیم اصول فقه الاخلاق. اون دومی بگیم اصول فقه المعارف یا فقه العقائد. به اون ثبتی هم بگیم اصول فقه الاجتماع، فقه نظامات اجتماعی. این هر کدوم اصولی میخواهد. یعنی براخره ممکنه تفاوت‌هایی در نحوه ورود و خروج در این مباحث وجود داشته باشه که کما بیش آشنا هستید به نظرم خیلی معطل نشم این ها. از شرطی که حالا سوالی که ما می‌خوایم اینجا اینا رو با هم دیگه مباحثه کنیم اینه که روش معتبر آلمانه و صحیح استنبات احکام اخلاقی و کشت نظام جامع ارزش های انسانی از منابع معرفت دینی چیه؟ روشی که اعتبار و استناد آموزه‌های های اخلاقی استنباط شده را تضمین بکنه یعنی این ادعاهای اخلاقی که صورت میگیره کاملا مستند به دین پاسخ داده بشه گاهی شما ملاحظه فرمودید که بعضی از پرسش های اخلاقی بین آلمان اخلاق محل اختلافه یعنی نظرات مختلفی وجود داره و خیلی هم رازگشایی نمیشه خیلی هم سرش بحث نمیشه یه خیلی بحثهای مفصل و مقصودی صورت نگرفته ما احتیاج داریم به این که اینها رو بنشینیم مثل همون دقتهایی که در علم فقه الاحکام تو کلاسهای درس خارج فقه صورت میگیره یک کلاسای درس خارج فقه الاخلاق بذاریم اینا رو یک به یک بحث بکنیم من اینجا میخوام بعضی از چالشهایی که بعضی از مسئله ها و دشواری هایی که در استفاده از متون دینی برای کشف گذاره های اخلاقی وجود داره میخوام اینا رو یه این مداره به شما نشون بدم طبعا نبرسیم ما پاسخ بریم فقط من صورت مسئله ها رو برای شما ترح میکنم که ببرید ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم در فهم نظام ارزشی اسلام در فهم اخلاق اسلامی از مباحث ها رد تو این زمینه یکی دو سه جلد کتاب هم نوشته شده اگر دوستان علاقمند باشن این کتاب ها رو مطالعه مر... بکنن یکیش عنوانش هست آشنایی با فقه اخلاق کتابی هست با عنوان آشنایی با فقه اخلاق درامدی بر دانش اخلاق اجتهادی و استنباطی این که من دارم میگم عمدتاً اونجا اومده آمدی آشنایی با فقه اخلاق درامدی بر دانش اخلاق اجتهادی و, است... و استنباطی این یکی یک کتاب دیگری هست با عنوان استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم. استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم ما یه مسئله ها و بغرنج ها و دشواری هایی داریم در فهم سیره معصومین علیه السلام معمولا در بیان سیره معصومین اینجوریه که ما رفتار معصوم رو به عنوان الگو به عنوان عصر حسنه مطرح می‌کنیم که ازش الگو بگیریم دیگه یعنی به اسطلاح تو زندگی ازش استفاده بکنیم وقت اونجا یه سری مشکلاتی وجود داره گاهی وقتا رفتار معصوم با ظاهر آیات قرآن نمیخونه نمونه اش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشون بارین بود که هر مستمندی مراجع مراجعه می‌کرد یه چیزی بهش می‌دادن که دست خالی نره یه دفعه هیچی نداشتن یه کسی اومد بگه چیزی به من بدید حضرت فرمیدن چیزی ندارم بگم پیرنتونو بدید حضرت پیرم باز کردن و دادن بهش بعد خب دیگه جالب نبود دیگه رفتن خونه نشست وقتی نماز شد از اون پیرم تسبید بیرون پیرانی نداشته بپوشه بعد آیه نازل شد لا تجعل girdle که مغلولتا الالهنا قت بلا تفسد ها کل البس فتقردا معلومن محصور سوال آیا خدای متعال داره تختعه میکنه پیغمبر اکرم رو این با مبانی معرفت الهی سازه پیغمبر اکرم گل سرسبد کائنات اعظم مخلوقات کاری خلاف امر خدا کرده که خدا تخطئه اش بکنه یعنی کار خطا مرتکب شده سیره فعل معصوم، فعل معصوم، اونم معصومی مثل پیغمبر اکرم. اینجا به حسب ظاهر با آیه قرآن نمیخونه. نباید چی گاهی فعل معصوم با سخن معصوم نمیخونه. نمونهش فرمودند ایاکم و دین فانه انهو همون باللیله و ظلم بالنهار. از قرض گرفتن و مدیون شدن بپرهیزید به خاطر اینکه این باعث میشه که شما روزها دلمشغول باشید و بباشید. شبها دلمشغول باشید همش پرداخت بدهی روزهام روزها هم صرف گنده مقابل طلبکا ظلن همون به و ظلن بالنهار. به نوع این کردند ما رو اهمیتها از قرض گرفتن. شما مکرر شنیدید که امیر علیه السلام خودشون رو قرض می‌گرد. قول معصوم با فعل معصوم نمی‌خونه. گاه این فعل یک معصوم به حسب ظاهر با فعل یک معصوم دیگر نمی‌خونه. یا با فعل خودش در جای دیگر نمی‌خونه. اینم مواردش تو ذهنتون هست دیگه مثلا نحوه لباس پوشیدن امیرالمومنین با لباس پوشیدن امام رضا علیه امام صادق گاهی وقتا فعل معصوم با باورهای اعتقادی ما نمیخونه گاهی وقتا فعل معصوم با عرف اجتماعی روز نمیخونه گاهی وقتا فعل معصوم قابل تعصیم نیست. و مشکلاتی داریم تو استفاده کردن از فعل و سیره معصوم مشکلاتی داریم که اصول فقه موجود ما از حل این مشکلات ناتوانه البته شاید شاید از بعضی از قواعد عام اصولی بشه استفاده کردن ولی احتیاج به یک بازنگری و بازنگاری اصول هست ناظر به این مساله یک کتاب دیگری هست با عنوان استنبات حکم اخلاقی از متون دینی و عدله لفظی. استنبات حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی. این دو جلد این کتاب دو جلده تقریباً بیش از 600 صفحه، در اینجا 13 تا مسئله، در این دوجل 13 تا مسئله یا چالشی که ما برای فهم اخلاق اسلامی باهاش مواجه هستیم معرفی شده ما این جلسه، الان این که دور هم نشستیم. من سعی میکنم این 13 تا مسئله رو حالا هر چقدر شکل برسیم خیلی سریع برای شما طرح بکنم، فقط صورت مسئله رو میتونیسیم مزرح بکنیم حالا پاسخهای احتمالی که برای این مسائل هست یا پیشنهادهایی که برای توصیع علم اصول تو این زمینه صورت گرفته اونها رو دیگه دوستان باید مطالعه بفرمایند. این دو جلد عنوانش هست استنبات حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی حالا بعضیش از یه مسئله مفاد سیغه تفضیل در روایات اخلاقی هست ببینید ما تو اصول فقه موجودمون تو مواعظ الفاظ از مفاد و مدلول سیقه افعل یعنی سیقه امر و لا تفعل سیقه نهی بحث میکنند که امر دلالت بر وجوب میکند یا استحباب نه دلالت بر حرمت میکند یا کراهت دلالت بر فور میکند یا تراخی دلالت بر مربع میکند یا تکرار اینو بحثی هستم تو اصول فقه موجودم امر و نه بیشتر ناظر از به الزامی ما تو اخلاق دنبال خوب و بد میگردیم دنبال نظام ارزشی میگردیم دنبال این هستیم که خوب را از بد و خوب را از خوبتر و بد را از بدتر تشخیص بدهیم اونجا افعل تفضیل ها خیلی به درد ما میخوره مثلا اونجا ما اگه بخوایم بگیم بهترین کار یا می‌خوایم مقایسه بکنیم بین کارها این کار بهتره یا اون کار این کار ارزشمندتر است در پیش خدا یا اون کار اونجا افضل تبذیرها ها به دست ب... ما مثلا فرض کنید افضل شما یه جستجوی ساده‌ای تو همین نرم افزار نور بکنید بزنید افضل اعمال یا بزنید خیر العمل یا بزنید احب اعمال الی الله یا بزنید ما اعبد الله بشی افضل من یه جستجو بکنید نتایجش خیلی حیرت انگیزه خیلی حیرت انگیز و سرشماوره ما پیش پیش نگاه میکنیم به گمان گمانمون اینجوری میرسه که افضل باید یه دونه عمل باشه دیگه مثلا حیه علی خیر نماز از همه اعمال ظاهرا باید برتر باشه دیگه درسته افضل الاعمال علالقائده باید یک فرد داشته باشه اما وقتی میریم تو روایات میبینیم که به نحو شگفتنگیزی خیلی چیزا به عنوان الاعمال معرفی شده دقیقا من یه بار جمع کردم حدود چهل تا چیز به عنوان الاعمال معرفی شد الاعمال از صلاة الوقت یا یا خیرالعمال از صلاة یه جا گفتن افضل اعمال بر و فاطمه یه جا گفتن افضل اعمال انتظار الفرج یه جا گفتن افضل اعمال احمدیه یه جا گفتن افضل اعمال کلمت لایهات یه جا گفتن افضل اعمال زیارت الحسین ببینید 40 تا مساق برای افضل اعمال هست خب حالا شما دانشمندان علوم اسلامی هستید و آلمان دین بفهمید افضل اعمال چیه اصول فقه موجود ما این چالش رو حل میکنه اصول فقه هم موجود ما در مفاد سیقه تفضیل ارشادی به یه راه اینه که ما این مسئله های بغرنج که نمیتونیم حل بکنیم بیایم بگیم که آقا روایتش ضعیبه. یه راه خیلی ساده اینه بگیم روایتش ضعیبه. مشکل ما اینه که مشابه این مسئله رو تو قرآن هم داریم. ای کاش فقط تو روایت بود که مثلا بگوید این آقا به رو یا مثلا چی کنی خلاص می‌کردیم ازش مشاوره تو قرآن هم داریم، نگاه کنید و من اولو ممن من این تو قرآن جستجو کنید و من اولو ممن یا فمن ظلمو ممن 15 بار تو قرآن اومده از این ظالم‌تر کی سراغ داری از این آدم ظالم‌تر کجا میشه سراغ گرفت ممن منع مساجد الله انغول کرفی هستو و سعا فی خرابه ظالم‌ترین آدم اون کسی است که از مساجد خدای متعال منع کند که در اون ذکر پروردگار بشود و سعی کند در خراب کردن مساجد اینو به عنوان ظالم ترین آدم معرفی کرد آیه بعد میگه دیگه من اعلم من من سرع الله کذبا به آیاته یه کسی دیگه ای رو به عنوان ظالم ترین معرفی کرد توی این آیه میگه من و من اعلم من ذکر رب به آیات رببی فعل و عنها و نسی مقدمه یذ تو آیه هم میگه من و من اعلم من كنت تمشهادتان اندهو من الله بفهمید ظالم ترین آدم کیه ظالم ترین آدم کیه اصول فقه موجود ما اینو حل میکنه اینجا به ما کمک نمیکنه خب ما چجوری اینو بررسی بکنیم حالا پیشنهاد ما برای حل این مسئله چیه اول اینکه ما این چالش ها رو باید شناسایی بکنیم حالا من تلاشم تو این جلسه اینه که اینا رو, یکم رو بریزم اینا رو بزنیم رو دایره این مسئله هایی که ما در فهم این گونه معارف داریم روبریزم برای حلش فکر میکنم که باید نمونه های متعدد رو جمعاوری بکنیم. تمام این نمونه های متعدد رو ما جمعاوری بکنیم. بعد مراجعه کنیم به تفاسیر قرآن و آراء مفسران. مراجعه کنیم به شروح احادیث کتاب که در شرح حدیث نوشته شده و آراء شاهدان یه نگاه جمعی به همه آراء متخصه بکنیم. شاید بتونیم با تحلیل و جمعنی نتیجهی بگیریم. حالا تو این کتاب تلاش شده که یه کاری بشه این چالش اول پس چالش اول مفاد سیغه تفزیم چالش دوم تو روایات اخلاقی ما روایاتی داریم که دلالت میکنه بر نوعی ثواب و اقاب بعضی از این روایات خیلی شگفتانگیز و غیر قابل باوره ثواب و اقاب های شگفتنگیز اصلا این روایت نگاه کن زیاد هم داریم یکی دو تا سه تا ده تا صد تا نیسا زیاد داریم روایاتی که دلالت میکنه برسا اصلا مرحوم صدوق یک کتابی داره سباب الاعمال و عقاب الاعمال کتاب حدیث قطوریس سباب الاعمال و عقاب الاعمال تو اونجا هست جای دیگه هم هست اونم به اونم تمام نمیشه جای دیگه هم هست نگاه کنید میگه من مشاء الی به بنفسه و مالی لسله رحمه کسی اگر حرکت بکنه به سمت یکی از خیشاوندان خودش که سله رحم انجام بده اعطاه الله عزوجل اجرمعت شهید به او خدای متعال اجر 100 شهید را می دهد له به کل خطوتن 40000 حسنه هر قدمی که برمی دارد چهل هزار چهل هزار حسنه برای او نوشته می شود و چهل هزار سیعه از او مهد می شود و چهل هزار درجه برای او در واقع ثابت می شود و, و کان که انما عبد الله عز و 100 سنه صابرن محتسبا و مانند کسی میماند که 100 سال عبادت خدای متعال را خالصا صابرن انجام بدهد. اه... یکی یک دیگه هم میگم بعد اه... یه فرمول میخوام ازش دربیارم در روایت آمده این روایت دیگه همتون شنیدید. سه تا قلحوالله معادل ختم قرآن ثواب داره. شما احساس میکنید این روایت رو میفهمید؟ یعنی میتونید قشنگ ادعا بکنید که سه تا معادل ختم قرآن ثواب داره؟ اگه اینو خیلی جدی بگیریم، هیچ کس نمیره قرآن بخونه. دقیق کنید چه بلایی سر ما میاد اگه این حرف رو خیلی جدی بگیریم هیچکس نمیره قرآن بخونه چرا؟ چون ختم قرآن با بالاترین سرعت حداقل 10 ساعت طول میشه هر جز رو شما تو 20 دقیقه بخونید سی میشه ده ساعت سه تا و الله تو کمتر از یک دقیقه خونده میشه وقتی من میتونم با کمتر از یک دقیقه کار ده ساعت رو بکنم دیوانم برم ده ساعت ختم قرآن بکنم. کل دیوانه حاضر میشه این کارو شما رابطه ده صد ختم قران کردیم نه الله الرحمن الرحیم قل هو الله الله الصمد لم ولم الله الرحمن الرحیم الله الله الصمد لم ولم ولم الله الرحمن الرحیم قل الله الله الصمد لم هم حالا این روایت چجوری باید بفهمیم که میگه سه تا بله والله ختم قران رو داره یا یه نفر نه از ازان در راه خدا بگه، خالصاً یه دانه ازان بگه، معادله کل متشهده به دم هیفی سبیل الله، مثل کسی که در خون خودش در راه خدا بقل ترد. اگر باور کنیم، میشه کسی جنگ نبیره، میشه کسی جبه نبیره، همه واقعی می صحیح ازان، بگه. ازان خالصانه. کجای اصول فقه موجوده ما این مسئله رو حل می‌کنه؟ اینا مربوط میشه به مسئله اخلاقی دیگه، ما همه به است ارشدات که این روایت رو نگاه بکنید میگه اتا قبر الحسین عارفا به حقی کان کمن حج 100 حجت مع رسول الله کسی اگر امام حسین علیه السلام و شاء تو اربعین همه مشرف بشیم عارفا به حقی زیارت بکند مثل این میمونه که صد حج رو با پیغمبر اکرم انجام داده است حالا این روایت رو نگاه کنید من اتا قبر الحسین عارفا به حقی کان کمن حج 3 حج مع رسول الله 3 تا حج انجام بده حال سه تا حصدداد. خب اینجا هم باید همون کار رو انجام داد یعنی ما باید بریم این نمونه ها رو جمعوری بکنیم ا اگر این تمه این نمونه ها را جمعوری بکنیم چون هر کدومش ممکنه یه چیزی داشته باشه، هر کدومش ممکنه یه جور حل داشته باشه. نمونه های متعدد جماوری بکنیم، شروع روایی رو نگاه بکنیم، تفاسیر تفاسیر آیات قرآن رو نگاه کنیم. اینا نوعاً این چیزایی که عرض می‌کنم تو قرآن هم نمونه دارم فقط روایت مثلاً نمونه‌هاش من روایی بردم ولی نوعاً نمونه های قرآنی هم داره. یه مسئله دیگه ای ما داریم در روایت‌هامون داریم، باز در قرآن هم داریم. نمونه قرآنی هم داره. که یه ادعاهای غیر باوری که به حسب ظاهر مبالغ آمیز دیده میشه این نگاه کنید فضل العالم علال عابد فضلی علی العابد که فضل علا ادنا این از پیغمبر اکرم نقل شده صلی الله علیه و آله و سلام کارمدن فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت من است بر پایین ترین و بر... کمرتبه ترین شما مسلمان ها خب فاصله عالم و آب... چقدره مثلا فرض کنید حالا یه اندازهی در نظر میگیرید فاصله پیغمبر اکرم به عنوان اشرف مخلوقات پروردگار با عدن المؤمنین که پایین ترین انسان مؤمن است این بالاترین فاصله است که بین دوتا مسلمان میشه فرضش کرد بالاترین فاصله بیشترین فاصله ای که بین دو تا مسلمان میشه فرض کرد فاصله ادن المؤمنین است با پیغمبر اکرم یقیناً فاصله عالم و عابد یا عالم معمولی با یا عابد معمولی از این فاصله کمتره شک نکنید دیگه چون اون عالم از پیغمبر اکرم شانش بالاتره اون عابد هم از اون ادن المؤمنین شانش بالاتره درسته عالم هر چقدر عالم باشه قابل مقایسه با پیغمبر گرامی نیست از پیغمبر اکرم قطعا شأنش پایین تره عابد هم هر چقدر بدبخت باشه از ادن المسلمین اون بدبخترین مسلمان ها شأنش بالاتره پس قطعا فاصله عالم و عابد معادل فاصله پیغمبر اکرم با ادن المؤمنین نیست خیلی روشن اینجا می‌فرماد فضل لالعالم علی العابد که فبنی علی ادناک یا این آیه شریفه رو نگاه کنید. میگه من قتل نفسان به غیر نفسان او فسادن فل آغ فکر نمک قتل الناس جمعی کسی یک نفر رو گناه بکشه مثل اینکه همه انسانها رو کشته. آیه شریفی قرآن. مثل اینکه همه انسانها رو کشته. واقعا اینجوریه کسی یک نفر رو بکشه مثل اینکه همه رو کشته. این این سؤال من ای بر دقت دقت کنید واقعا اینگونه است چی میخواد بگه؟ ببینید این من این چالش هایی که میخواستم پیدا بکنم از تکنولوژی واقعا استفاده کردم یعنی این آیات دعایت اخلاقی رو خوندم ترش یه واقعا گذاشتم مثلا میگه که خوندن سه تا قلوه و الله معادل یه ختم قرآن ثباب داره یه واقعا ترش بوده، واقعا؟ واقعا واقعا یه واقعا تاش بزاری ترید میکنید تو فهم خودتون این واقعا اینکه ما میذاریم دقت کنید اینجا یه نکته حساسی وجود داره این واقعا اینکه ما ته این آیات یا روایت میذاریم معناش این نیست ما میخوایم تردید بکنیم تو قول خدای متعال یا تردید بکنیم تو قول پیغمبر اکرام دهان ما بشکنه اگر بخوام تردید توی اون منبع بکنیم اون منبع سر خودش درست ما ترید تو چی میکنید تو فهم خودمون. برداشته ما درسته؟ ما داریم درست میفهمیم؟ واقعا اینجوریه پیغمبر این میخواست بگه خدا میفرماد من قتلن نفسن به غیر نفسن او فسادن فل اردف که اند ما قتلن ناسه ها واقعا اینجوریه که یه نفر کسی بکشه معادل اینه که یک نسخه کشی را بندازه هم رو بکشه یعنی خدای متعال فردای قیامت این دوتا رو بخواد عذاب بکنه. یک کسی مثل صدام رو که این همه آدم کشته، نزد کشی کشته، فقط تو حلبچه پنگ هزار نفر شیمیایی کشته شده صدام عذابشت با یه نفر که زده یه نفر کشته، اینا مساوی هست؟ فردای قیام واقعا؟ یا ما نمیفهمی یا اینجا مشکلی ما توی فهم این آیه داریم، یجور دیگه بای فهم این روایت نگاه کنید فهمش شطرنج، ف انتخابه ها کفرون و لعبوبه ها شرکن شطرن تو ورداری کفره باش بازی کنی شرکه، واقعا؟ ما درست می‌فهمیم؟ ما درست می‌فهمیم؟ گناه، گناهه، فسقه، اینا رو میفهمید اما کفر شرکه آدم اینجا هنگ می‌کنه، سیستمش هنگ میکنه؟ یا مثلا میفهمد که لو علم الناس ما في التعوین لتوارب عليه علیه بسیوف. اگه مردم میدونستان که از آن گفتن چقدر ثواب داره برای اینکه سبقت بگیرن برای اذان گفتن بر هم دیگه شمشیر میکشیدن. خب بفهم این یعنی چی؟ یعنی حالا مثلا ما دم اذان شد شمشیر برداریم هم بگیفتیم دیگه کار کاره کنیم مثلا من میخوام اذان بگم چون میگم من می خواهم اذان گفت. درست دارین میفهمین؟ واقعاً؟ پیغمبر اکرم فرمودن لا المسجد او احرقنا عليكم منازلكم یا به مسجد یا دستور میدم خونه هاتون آتیش بزنن این مکرر هم نقل شده این باید مکرر نقل شده یه جوری خبر واحد نیست تذافر داره تواتر نداره ولی تزافر یا حرمت الجار علی الجار که حرمت امه احترام همسایه بر همسایه مثل احترام مادر میمونه. مادر شما چقدر احترام داره؟ همسایه هم همونقدر احترام داره. واقعا؟ یه واقعا بذارید تایش؟ واقعا؟ اینجا رو نگاه کنید. این ملعونون، ملعونون من احتجب عن اخی. ملعون است. دوبارم تکرار کردن کسی که از برادرش خودش قایم کنه. احتجاب داشته باشه. حالا مقصد مسئولان مملکتی که میرن پشت یه در در بستهی و حاجب میذارن برای خودش. ملعونان ملعونان من القا کلهو علی ناس کسی زحمت خودش رو به دوش دیگران بیندازه. ملعونان من غیع من یعول اون کسی که عیال خودش رو ضایع بکنه. یعنی رسیدگی لازم رو در حق عیال خودش انجام رد. این کلمه لعن رو شما تو قرآن کریم جزدجو کنی برای کافران و منافقان و مثلا آدمای خیلی خفن لعن به کار برده و این بعد وقتی که مثلا زحمت خوش حساب دفتر روتوشه توی مسافرت زحمت خودت حساب دفتر توشه. کولاشو داده به تو اربعین کولاشو داده به رفیق این مثلا باید لعن بشه اون ما مثلا خیلی خیلی از بعضی‌ها کینه داریم اون‌ها رو لعن می‌کنی اللهم العن اول ظالم ان ظلم و حق محمد ان و محمد آخر له و ما شمر و بله یعزیز اینا من لهم میکنیم، وقت، این وقتی کوله شدون، سفر عربانید داده به رفیقش، این باید که دوبار رفیقم، درست یا مثلا این، تو مقاتل اومده که امام حسین علیه السلام به عباس فرمودن یا عباس اركب بنفسی اند یا اخي حتی تلقای مال شبه آشوراس عصر تا سوعا عصر تا که حمله کردند به سمت لشکر امام حسین امام حسین که به برادرشون از زرباست فرمودن که اركب بنفسی اند جانم به فدایت واقعا امام علیه السلام با اون منزلت اسمتی که دارد با اون منزلت دیجی که دارد این که به حضرت عباس بگوید جانم به فدایت این ازش مدلول مطابقیش اراده میشه یعنی جان امام حسین به فدای اول فض جان همه اهل آلم به فدای امام حسین این هم یک چالش یک چالش مواردی که مهم نوعی مبالغه و گذاف گویی نمیگیم میگیم گذاف آراییست یه موضوع دیگه یه چالش دیگه تو فهم های اخلاق چالش دیگه که ما داریم ابهام در سور قضیه است مثلا نگاه کنید گفته سبب الفقر الاسراف این باید اون چه که مایه فقر میشود اسراف کردن است آیا همیشه اسراف کردن موجب فقر انسان ها میشه. آیا همیشه اون که فقر می آورد اسراف کردن است یعنی عامل دیگه ای نداره؟ از هر دو طرف سوال می‌کنم. خیلیها هستند که ثروتمندان اهل اسراف هستند فقیر هم نشدن؟ از اون طرف عوامل دیگری هم برای فقیر شدن وجود دارد. این الان اینو چجوری سور این قضیه چجوری باید مشخص بشه کلی بودن و جزئی بودن یا مثلا میفرما تا تا نساق آیه و, نسا، و جه تبعیت کردن از زنان نهایت نادانی است خب این کلیت داره الان جوهر داره دقیق کلیت خواهم خب. یا مثلا میگه کل دائم و دا با الا سوء الخلق هر هر دردی درمان دارن مگر بداخلاقی واقعا همه دردا درمان دارن فقط بداخلاقی مثلا ام اس و ایید و سرطان اینا درمان دارن فقط بداخلاقی که درمان نداره بعد حالا واقعا بداخلاقی درمان نداره از اون درسته بداخلاقی درمان نداره این نمیشه میشه این آدم بداخلاقی رو ما کنیم باید خونیم با مثلا این چند جلسه مشاوره ای یا مثلا یه ریاضت اخلاقی چیه اخلاقش رو درستو کنیم نمیشه یا می ان اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا الفحشاء الْفَحْشَاهِ وَالْمُنْكَرْهَانِ این دیگه آی قرآن نماز انسانها را از فحشا و منکر باز می دارد واقعا؟ واقعا؟ یعنی اینا که نماز بخونن دیگه اهل احل فحشا و منکر نیستن؟ یعنی ای کی انجام بده؟ که انجام داده؟ این که ممنوعه صفحه اول نماز جماعت هم بودن بعضیه من آدا جارهو حرم الله عليه ریحل جننه کسی اگر همسایه خودش رو آزار بده خدای متعال بوی بهشت را هم بر او حرام می کند. تا چه رسید خودش؟ من عش به عاکبدن وجبت له الجنة کسی یک جگر گرسنه را سیر کند بهش بر او واجب می شود. اصلا کلا این وجبت جننه یا وجبت لهالجنه یه فصل فرابانی روایت داره صدا روایت داریم که با این تمام میشه وجبه لهالجنه منظار همته نابقم دیگه معروف دارینش هم منظار همته نابقم وجبه لهالجنه اینجا یه واقعا بزاریم یه واقعا بزاریم تهش ما واقعا داریم درست میفهمیم این یک یه چالشه دیگه من فقط سر زخما رو باز میکنم یعنی <تصفح> <تصفح> ما اینجا اینا رو دونه دونه باید بحث کرد و پاسخ داد. ها من فقط دارم سر زخما رو باز میکنم که شما ببینید که ما گمان میکنیم معارف اسلامی رو میفهمیم خیلی مسئله داریم خیلی مسئله داریم مفاد اعداد و خسال ما یک سری روایت داریم یکی دوتا تا ده تا تا نیست خیلی زیاد. روایت رو داریم که ایش اعداد و خسال اومده اونجا این مشکلات رو داریم مثلا فرض کنیم تو روایت اومده سه چیز است اگر کسی داشته باشد دینش کامل می شود یک دو سه یه جا دیگه گفته پنج چیز است اگر کسی داشته باشد دینش کامل می شود یک دو سه چار، پنج این ستا تا با اون پنج تا هیچ ربطی نداره هیچ مشترک نداره بالاخره هست. هست. هست. هست؟ سه تا است پنج تا هشت تا چند تا است گفتی اگه پنج تا چرا گفتی سه تا اگه سه تا از چه گفتی پنج تا بعد خب این سه تا و پنج تا که باران نمی کنه، یه درست بگو هشت شد سه و پنج رو بعدی چی گفتی؟ این رو باید تا کنید، این رو باید همهتون حفظید پیغمبر اکرام فرمودن من تزوجه فقط احراز نصف دینه فلیتق الله هم نصف الاخر کسی ازدواج بکنه انشالله مجرد نداشته باشیم در جمع خودمون کسی ازدواج بکنه نصف دین خودش رو حفظ کرده فلیتق الله فل هفت نصف الاخر اون نصف دیگرش خودش حفظم در یه روایت دیگری فرمودن باز این هم از خود پیغمبر ایتن همه. که فرمودن جوانی که ازدواج بکند این شیطانش میگه یا ویلهو یا ویلهو عصمم من ثلث ای دینه دو سبغم دینش از من حفظ کرد فلیتق الله هفت ثلث الاخر یعنی چالش یک چالش دیگه یه چالش دیگه تعریف مفاهیم اخلاقی است. تعریف مفاهیم اخلاقی توی منابع دینی. یه موقع ما توی تعریف مفاهیم اخلاقی میریم مراجعه میکنیم به کتاب های لغت. مثلا تقویم معنیش چیه کتاب لغت مراجعه کنیم. توکل معنیش چیه کتاب لغت مراجعه کنیم. بردسی های لغوی یا فقه لغوی انجام بدیم. ولی بعضی از روایات هست یا بعضی از آیات قرآن هست جست تعریف گرفته یعنی آدم به ظاهرش نگاه میکنه به نظر میرسه که داره تعریف میکنه ما یه سری چالش داریم که این تعریف مفاهیم اخلاقی در قران رو هم نمونه های داره هم نمونه های روایی داره مثلا اینو نگاه کنید از حضرت سال کرد مل ایمان حضرت فرمودن الایمانو بالله ان لا تعصی الله ایمان اینه که معصیت پروردگار رو نکنید گناه نکنید این ایمانه حالا این تعریف ایمانه واقعا این واقعا بذارید تو فهم خودتون شکم. باز باث فراملكان فرمودن من اسب بهلا یهتمو به امور المسلمین فلیس به مسلم کسی صبح از خواب بیدار بشه دغدغه‌مند و دل مشغول امور مؤمنین نباشد امور مسلمان‌های های عالم امور امت اسلام نباشد فلیس به مسلم شما من سوال میکنم امروز صبح از خواب بیدار شدید امروز از خواب بیدار شدید اصلا فکر فلسطین و قذب و لبنان و سوریه و عراق و میانمار و میجریه و بفرماید یمن و اینا بودید؟ صبح اصلا به این فکر افتادید. افتادید؟ فلایسطه مسلم، پیغمبر فرمیده فلایسطه مسلم، این نفیه تعریفه، این خود تعریف نیست، نفیه تعریفه میگه تعریف مسلمان برای این صادق نیست، حالا صادق نیست چیکار کار کنند، باید بزارن جله یه چیز تیر بارون شده. چی میخواد بگه؟ ما درست داریم میفهمیم فهمیدند لایثه من شیعه تاممم لم یصلی کسی نماز شب نخونه از شیعیان ما نیست حالا شما که الحمدلله نماز شب می اونایی که نماز شب نمی من چیک خاطر به سرشون کنم لا يكون المؤمنون الا حلیما رحیما مؤمن نیست مگر کسی که حلیم و رحیم باشد. یعنی اون کسی که مثلا یک کمی پرخاشگره یا کم حوصله است. حلیم یعنی بازرتیت، پرزرتیت. بعضی هاش هم که خیلی سنگینه. نگاه کنید. میگه که نگه نگه که به من زعمن و بلدمن حلال و هوای اکل و لحومن ناسه بالغیبه دروغ میگه کسی ادعا کند حلال زاده است و گوشت مردمان را با غیبت بخورد. و مباحث دیگر که فرمودن وقت تموم شده ما در ادامه به پشتش ها پاسف بودیم یک سلوات انایت کنیم در خدمت دوست هست خب یکی یکی اینا رو چیز بکنیم مش شبد که برادرامون نوشتن روایاتی که در اینجا بیان شده فهم آنها راجع به فقه و حدیث است فرق میان علم اخلاق از روایات و علم فقه و حدیث چیست احسن بفرمایید درست می فرمایید این مسئله ها در شروع احادیث من اشکارم در تفاسیر قرآن کریم و در کتاب‌های شرح الحدیث در اونجاها بهش خیلی, خیلی از اینها پرداخته شده و به اصطلاح حل موردی شده حل موردی یعنی زیل یه روایت اون یه دونه روایت حل موردی کردن ما در علم و اصول همون باید همه اینا رو جمع بکنیم نه حل موردی حل جامع بکنیم یعنی بعضی از اینها خب شما یه احتمالاتی به ذهنتون رسید من که داشتم ارزمی کردم احتمالا یه احتمالاتی به ذهنتون رسید توی کتاب های شرحال حدیث هم بعضی از اینها رو بیان کردن اونتا به نظر میرسه که اینها باید تجمیع بشه و یک جا نمونه های یک جا بیاد و حل یک پارچه بشه کمانی که مثلا فرض بکنید یه زمانی در علم فقه مباحث اصولی هم مطرح میشد و از زیل هر بحث فقری که می دستن. یه جایی مثلا اشاره بعد آروم آروم علم اصول رو از دل علم فقه در آوردن وقتی به یک تراکم و انباشتی رسی در این خودش مستقش اینا رو به صورت موردی بعضی توی کتابای حدیث، کتاب شرح الحدیث بحث کردن ولی این باید بیاد، این خصوصاً روایت اخلاقی بیاد یک باره اینا یک جا بحث بشن فرمودن که تمام موارد و شاهد مثال هایی که ذکر کردید بحث های اصولی در آنها مطرح شده است آیا در علم اصول بحث از قرینه و قرینه یعنی قرینه متصله و منفصله مطرح نشده بسیاری از مواردی که ذکر کردید قواعد منفصله دارند که قرینیت و مفصلیت دارد و ظهور بدی روایات که موجب بحث می شود را حل می کند بر اینکه در برخی از خود روایات قواعد داخلی یی مانند قرینه مناسبت حکم موضوع وجود دارد که باید مورد دقت قرار گیرد علاوه و بران که در بری رو بایدات تعر کنایی مجازییم وجود دارد که با قدر تحمل و مراجعه به درواط دیگر قابل حل است بله اینا کلیتتا درسته اما سرف که ما بگیم که ببینید این قاعده نیست که و به قرار مراجعه کنیم این یه مداری باید ضبط من ترش بکن چون دوسته ما گفتن یه دو حل کن من یه دو نشه براتون بگم این یکی از قواییدی که تو ف اخلاق یا فقه، ال... به قول برادرمون فقه حدیث اخلاقی اما به حدیث هم نیست، آیات قرآن هم داریم دیگه ما بالاخره آیات اخلاقی هم داریم، احادیث اخلاقی هم داریم و نمیتونیم بگیم فقه الحدیث، بگیم فقه قرآن. باید بگیم فقه الاخلاق در واقع اینجور یکی از چیزایی که یک کلید کارگشا ها محسوب میشه برای فهم گزاره های اخلاقی اینه که گزاره های اخلاقی گزاره هستند که موضوعشون و محمولشون و نسبت بین موضوع و محمولشون ذات مراتبه یعنی مفاهیم مشککه نمیدونم درستش مشککه آج یا مشکک کدومش درست؟ مشکک و مشکک گزارهای اخلاقی موضوعش و محمولش و نسبت بین موضوع و محمولش مشکک این خیلی از مسائل رو تو فهم گزارشهای اخلاقی حل می‌کنه ببین می که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر این ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر گزارید فقهی نیست که واجب و حرام را ذکر کنه گزارید اخلاقی است که دلالت بکند بر خوبی نماز مخاط بگه نماز چیز خوبیه. چرا خوبه چون تنها عین بخشا بهر این گزاره گزاره اخلاقی این گزاره اخلاقی ما ها اینجوری تلقی میکنیم ما میگیم که خب شما نماز میخونی یا نمیخونی اگه نماز میخونی تنها عین بخشا بهر ممکن نمیخونی لاین ها عین ما تلقی یه تلقی صفر و یکیه. یا هست یا نیست اگه هست محمول دنبالش نمیاد. اگه نیست محمول دنبالش نمیاد. این تلقی اساسا درباره گزاره های اخلاقی باطله. گزاره های اخلاقی گزاره های صفر یکی نیستند. امور اخلاقی امور هستن ذات مراتب. شما باید موضوعش رو از صفر تا بی‌نهایت بکشید. محمولش رو هم از صفر تا بی نهایت بکش. یه رابطه نردبانی بین موضوع محمول هم برقرار کن از صفر تا بی نهایت. نماز که ما یه رقم نداریم. از ترین نمازی که در آلم خونده شده باشد که نماز منه تا بالاترین نمازی که در آلم خونده شده که نماز امیر المومنینه فاصله صفر و بی نهایته. تنها عن الفحشاء و المنکر هم امرش دائر بین صفر و یک نیست تنها عن الفحشاء و المنکر هم مراتب داره اگر شما نماز یک نماز درجه یک خوندی، یک درجه تنها اند پخش آوردن نماز درجه پنج خوندی پنج درجه تنها اند پخش نماز ده خوندی ده درجه نماز صد خوندی صد درجه نماز هزار خوندی هزار درجه نماز ده هزار خوندی ده هزار درجه نمیشه نماز یک بخونی بعد انتظار داشته باشی که صد درجه تنها اند پخش آوردن فرمود که قط اصل حل مؤمنین به فلاح میرسند. خب وق وقتی فلاح میرسه نه مؤمنین امرشون دائر بین 0 و 1 که شما میگید یا مؤمن هستی یا مؤمن نیستی اگه مؤمن هستی به فلاح میرسی اگه مؤمن نیستی به فلاح نمیرسی مؤمنان امرشون دائر بین 0 تا بی‌نهایت است فلاح هم از 0 تا بی‌نهایت کشیده می شود بین ایمان و فلاح شما در یک رابطه نردبانی از 0 تا بی‌نهایت ارتباط برقرار کنید یک درجه ایمان داری؟ یک درجه فلاح مثیبت میشه 10 ده درجه ایمان داری؟ ده درجه. صد درجه، صد درجه. ایمان امیر المومنی، فلاح امیر مسئله حل میشه و کم لهوم خیلی این ای که الان ارز کردم، خیلی از مسئله های اخلاقی را حل می کند. خیلی از مسائل اخلاقی را حل می کند. این آیه شریفه رو دقت بکنید میفرما: انما یتقبل الله من المتقین. خدای متعال فقط و فقط از متقین قبول می‌کنه. انما ی هست هم هست دیگه. خب. ما اینطوری نباید برخورد کنید؟ بگی آقا تو متقی هستی یا نیستی؟ اگه هستی اعمالت قبول میشه. اگه نیست نیستی ول معتدی، برو جهنم. اینجوری نباید نگاه کنید. این این رقم مواجهه با گزاری اخلاقی غلطه. تقوی آقا ذات یه نفر یه ذره تقوی داره، یه نفر دو ذره داره، یه نفر ده ذره داره، صد تو داره، یک کم امام المتقین، امیر المؤمنین میزان عمل، یه ذره تقوی داری؟ به تناسب تقویات عملت قبول میشه، یعنی تقویات به قبول عملته، اگه تقوی امیر المؤمنین میداشتی، در غربت و علیهن یوم الخندق افضل من عبادتت فقره خیلی از مسئله ها، یکی دوتا نیستان، خیلی از مسئله با این مسئله، با این موضوع حل میشه. کلمه لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. کلمه لا اله الا الله تحقق توحید در جان انسان یه درجه نداره یا شما موهد هستی یا نیستی؟ اگه هستی حسن از آتش داریم. وگر نه برو تو آتش. اینجوری نباید نگاه بکنیم. اینو ذات مراتب بگیری هم موضوع ذات مراتب بگیرید تو وحی تجلی در جان انسان هم حسن از عذاب پروردگار رو ذات مراتب بگیرید بعد هر درجه ای از این رو با درجه متناظرش با محمول اینا رو با هم دیگه مقایسه خب فهمیدن فرق فقه اخلاق با فقه و تربیت چیست اینم سوال خیلی خیلی خوبیه البته اگر بخواد جامع بحث بشه باید فپ اخلاق رو با علوم هم یک به یک مقایسه بکنیم یه سری علوم هم هست که باید یک به یک مقایسه بکنیم حالا فق و تربیت برمدن من این نعرض ببینید، این برمیگردنده به فق اخلاق با تربیتنی یعنی قبل از اینکه ما فپل اخلاق رو با ف و تربیت مقایسه بکنیم باید خود اخلاق رو با تربیت مقایسه کنیم اخلاق با تربیت چه فرق داره ؟ تا ببینیم فقه اخلاق با فق تربیت چه فرق ؟ اخلاق میگن علم بیان ارزش هاست ما سه تا علم نزدیکه به هم داریم من سه تا رو بگم حالا یک یه دونه دیگه هم اضافه من بگم ببینید خدای متعال انسان رو در یک موقعیتی آفریده است با یه ویژگی های آفریده است به او یکی از ویژگی هایی داره ویژگی اراده و اختیاره بهش اراده و اختیار داده بهش گفته که تو حرکت کن به سمت قله خوبی ها انسان کامل ما در واقع سه تا انسان داریم سه تا انسان داریم یه انسان آن گونه که خدا آفریده است یه انسان بعد از حرکت اختیاری که به قله میرسد رسد یه انسان در حال حرکت و سیرورت از این دامنه به سمت اون قله برای این سه تا انسان سه تا ایل درست شده انسان آنگونه که خدا آفریده است یعنی ویژگی موهوبی انسان انسان پس از حرکت اختیاری ویژگی های اکتسابی به دست نیاورد که ممکنه خوب باشد قله ممکنه بد باشد دره انسان در حال حرکت و سیرورت برای هر کدوم از این انسان ها یه علم درست شده برای انسان پیش از حرکت اختیاری برای بیان ویژگی های محبوبی، سرشتی و خدادادی انسان علمی درست کردن به نام انسانشناسی برای اون ویژگی های انسان که اون قله باشد یا اون دره باشد علمی درست کردن به نام اخلاق علم اخلاق، علم بیان ارزش ها و به تبعش زده ارزش هاست خوب را و بد را حسن را و قبیه را ارزش را و زده ارزش را هنجار را و, و نهنجار را فضیلت را و رذیلت را علم اخلاق بیان میکنه حالا شما خوب بعد رو شناخت دید؟ ها رو باید در جان خودت و فرزندت و متربیت و شاگردت ایجاد کنید بعدها رو باید از جان خودت و فرزندت و متربیت و شاگردت دور کنید بکنید یعنی باید یک انسان رو بر اساس این خوبی ها بسازیم و از اون بدی ها اجتناب دهیم. علمی که به ما چگونگی این عملیات را، عملیات حرکت کردن از این دامنه موجود به سمت اون قله مطلوب را نینه به این علم میگن علم؟ چی؟ تربیت. این میشه علم تربیت. پس فرق اخلاق و تربیت در اینه که علم اخلاق، علم بیان ارزشهای های است، علم تربیت، علم چگونگی تحول انسان تحول بخشیدن به انسان این فرق اخلاق و تربیته و فقه اخلاق میشه استنبات خوبها و بدها ارزشها و ضد ارزش از آیات قرآن فقه تربیت میشه استنبات چگونگی تحولات انسانی از آیات روایده از منابع ا یکی از دوستان تلاش کردن مسئله روایات افضل الاعمال را حل بکنن فهمیدن که آیا می توان در مورد روایات افضل الاعمال معنای جامعی را برداشت کرد ما مثلا گفت انتظار الفرج کلمه لا اله الله و غیره همگی مساق یک معنای کلی است مثلا وظیفه و اولویت اصلی که خدا از ما میخواهد نه با این مسئله ما نمیتونیم حل بکنیم شما اگر 340 تا مصداق رو برداشتید یک معنای ژله خیلی خیلی گسترده ای گفت گرفته دیگه هم افصلال اعمال بی معنا میشه خب اگه واقعا افضل اعمال اون معنای عامه چرا این سیچام اقه برش گفتن نماز اول وقت احسان به در مادر و در رو والدین مثلا زیارت امام حسین پلا این حرفها اون مسئله رو حل نمیکنه یعنی مشکل همچنان باقی بود با. نوشتن منبعی معرفی کنید برای حل این سوالات منب معرفی کردم دیگه چهار جل کتاب معرفی کردن. کتاب جل کتاب اول چی بود آشنایی با فقه اخلاق درامتی بر دانش اخلاق اشتهادی و استنباتی. البته در این درامت خیلی حل نشده بیشتر فضای فقه اخلاق به صورت رؤوس ثمانیش بیان شده یعنی گفته شده فقه اخلاق فرقش با فقه تربیت چیه با فقه انسان چیه با عرفان عملی چیه با روان شناسی چیه اینها مثلا اونجا بیان شده و بیشتر رؤوس سمانیه این علمه تو اون سجل به دیگه که استنباط حکم اخلاقی باشه اینا تلاش شده حل بشه حالا ملاحظه بفرمایید ببینید معطب بوده یا نه نوشتم که چرا چالش هایی که مطرح برمودید در ارتباط با خلع در روش اجتهاد و روش های اصولی آها چرا چالش هایی که مطرح کردید در ارتباط با خلع در روش اجتهاد و روش های اصولی بیان کردید آیا نمیتوان آن را به ضعف در مبانی اعتقادی مربوط دانست؟ برای مثال اگر حقیقت معانی زیارت نماز و غیره روشن شد دیگر خود به خود تناقضات رفت شد و شبهه نمیشود که آیا نماز می تواند از فحشا بازدارد؟ یعنی در واقع شما ببینید واقعیت اینه که ما تو فهم این گزاره ها درمانده ایم. برای فهم این مزار... گزاره ها باید چی کار کنیم؟ شما پیشنهاد دادید که برین حقیقت نماز و مثلا زیارت و امثال اینها رو بریم درک بکنیم یه یک ای برای فهم این گزاره‌های های اخلاقی باید بدیم شبیه همین چیزی که من الان عرض کردم که مثلا گزاره اخلاقی رو گزاره ذات مراتب تلقی کنیم نویشتم که راهکار برای رفت چالش های بیان شده چیست یک اصول الاخلاق داریم مثل اصول الفق شما به عنوان معاونه تهذیب برای تبلیغ این روش برنامه چیست؟ ارشاد که خب راهکار برای رفع این چالش ها خیلی مفصله تو یک ساعت نمیشه بیان کرد گاهی تو بعضی جاها مثلا چند ترم به این اقتصاص داده شده احتیاج به مبارسه های طولانی داره ارشاد که تو کتاب های شرحال حدیث امده اینها اومده و در این ستا کتابی که معرفی شد تا یه اندازه جمعوری و تنظیم و تنسیق شده انشالله مطالعه موامنه تهذیب وظیفه ای در این زمینه ندارد اینا کار موامنه چیه موامنه پجوهش این کار کار موامنه پجوشه یعنی اینا مباحث نظریه موامنه تهذیب متکفل پجوهش در زمینه اخلاق نیست موامنه تهذیب در متصدیه توسعه اخلاق عملی و در واقع تحقق اخلاق در جان انسان هاست در واقع موامنه تهذیب متکفل تربیت طالبهاس من تجوریش های اخلاقی کردی. و السلام علیکم و رحمت الله. لح جفت داشته باش انشاءالله حالا یه چند دیگه است سرات بکنید، common to see ما می‌خویم باش، سال اول و دوم درس خارج و سوم و چهارم درس خارج خوان، اینجا طراقه سوم هست